الله الرحمن الرحيم خامسا السكر فانجمين آرزه از آوارز از نوع مكتسبه بود سكر هست من مستي هو زوال الأقل بتناول الخمر وما يلحق بها بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكري. میگه که سکر یعنی زوال عقل با خوردن شراب و آنچه که ملحقه به شرابه یعنی مست میکنه بگونه ای که شخص سکران شخص مست بعد از بهوش آمدن نداند آن کارهایی رو که ازش صادر شده انجام گرفته در حالت سکرش در حال مستیش بله بعد از اینکه که به اون مستیش از بین رفت نمیدونه که در حالت مسیح چی گفته چی کرده بله میگه فسکرو یعطل العقل و یمنعه من التمييز دار نتیجه میگه سکر عقلو تاطیل میکنه و مانع از تمیز و تشخیصش میشه وكان ينبغي لذلك ان تنعدم به اهلیت الاداء و يسقط عن السكران التكليف ولا يكون مخاطبا بشيء حال حاله سكري ولكن الفقهاء لم يقولوا بهذا في جميع حالات السکر لقد داشید میگه موقعی که شخص هوش نداره، تمیز نداره شایسته بود که اهلیت ادا رو نمی داشت آقا فاقد اهلیت ادا بود شایسته بود که فاقد اهلیت ادا می شد و تکلیف از سکران برداشته می شد و در حالت سکر مخاطب هیچ چیزی از خطابهای شرعی نمی بود اما فقها ها در تمام این حالات این چیزا رو ازش رفع نکردن این چیزا رو نگفتن آقا یعنی آقا بله مکلفه داره خب و این نمی قص روح یه جوری نگفتن فقها. پس پسی گفتن و انما قصروه على حاله سكي اذا كان بطريق مباح میگفت اینو فقط مختص زمانی کردند که مستیش از روی مباح باشه بله الان پس میگن آقا میگه در اصل شایسته بود که اهلیت ادانه میداشت داشت تکلیف ازش برداشته میشد خطاب متوجهش نمی بود اما فقها اینا رو فقط در زمانی قائل شده اند که مستیش از اونی چه باشه مباه. مباه حالا به چه شکل مثلا شخصی آقا داره میمیره از تشنگی در این حالت برای این آقا خوردن شراب چی میشه می خب اگر اومد بیهوش شد در این حالت و چیز ازش سرداد اون موقع فاقد اهلیتش میدونند در این حالت و میگن که آقا با... این چیز ازش صاد بله اما اذا كان سكره بطريق محظور فقد جعلوه مكلفا ومؤاخذا بما يسطرانه على تفصيل و اختلاف فيما بينهم میگه اما زمانی که سکرش از راه حرام باشد این آقا انسان یه روی عمد از روی اسیان میاد شراب میخوره مست میشه این داستانش فرق میکنه از روی اسیان گناه دیگه از کسی که عمدی و روی گناه میاد شرابو میخوره آیا ما این اگر اومد و مثلا یک کاری انجام داد اینو هم دیگه تکلیف بگیم مکلف نیست؟ نه دیگه آقا این مکلفه بله؟ میسیان <تصفح> <ولی؟؟ تصفح> <تصفح> <مسم> <مه> نگفتیم گفتیم <مسم> <مسم> عسیان گناه بله میگم اما زمانی که مستیش از روی از را... طریق حرام باشد مکلف است و مؤاخذه میشه بر آن کاری که ازش صادر شده ما توجب اختلافی که بین فقها، ها یعنی در این مورد اختلافات است کما یتضعو یتضحو مما یعطی بعد انو بین حکم سکری به المباح، مباح همانطور که واضح خواهد شد بعدن بعد از این که حکم مس شدن رو از راه مباح بیان می کنیم بعد از این در جلوتر حکم سكر بطريقة مباحة ويكون خلية سيزوجة واضح مشي حالا در شماري الشاسوسات فغانا مين مسأله رو بياره بيجي السكر بطريقة مباحة مستيز راهة مباحة ويكونو سكر بطريقة مباح اذا شرب المسكر اضطراراً او اقراهاً او انا غير علم بكونه مسكراً او شرب دواء فاسكره ونحو ذلك بيجي سكر بطريقة مباح سرها هي يك زماني كي از روی اجبار از روی استرار و بیابانی قرار گرفته گرفتد میخواد بمیره. یا از روی اکراه کلاشی کف و سرش داشتن که آقا یا اینا رو بخور یا کشته میشی یا یه چیزی رو میخوره ولی نمیدونه که این مثلا مسکره مسکننده هست یا دوائی رو خورده و مسکش کرده میگه اگه از, از از این راها بود اون موقع از راه ما هست و حکم سکران به این ط حکم المغما عليه. بله. کسی خب. <تصفيق> کمان میگه از راه مباح شد از حکم کسی رو دارد که مغما عليه هست. بیهوش شده است. قبلا بحثو خوندیم تو این کتاب مرورشم کردید یا بکنید که اگر شخصی بیهوش باشد اغما النام اغما خوندیم یکی از آرزه های آسمانی بود یکی از آوارز سماوی بود میگه حکم اونو داره همون مسائلی رو که در اگر یاد مبارکتون باشد در شماره چار آوارزه سماوی آورده بود چه مسائلی رو داشت این هم اونایه مثلا اگر اومد نماز نخوند مغماله گناهکار میشه؟ نمیشه اومد آقا فوشی داد گناهکار نمیشه مقاخزه بدنی نمیشه بله؟ بیهوشه نماز نمیخونه دیگه چی می‌خواد چی گرفت اینجا هم این سکر اون حالاتو داره آقا سکر مثل یک انسان چیه بی نمیدونه نمی‌دونه آقا متوجه خطاب شریعت نیست بله پس سکر به طریق مباح فرق می‌کنه با سکر به طریق حرام که شماره 64 این بحث امتره می‌کنه. 64 از سکر به طریق محظور مسدودن شدن از راه حرام. آقا اومده از روی قول داره، از روی اهمیت ندادن به احکامات شریعت، اومده شراب خورده. وهنا اختلاف اختلف الفقهاء في حكم السكران و الاعتداد بالتصرفاته وسبب اختلافهم هو أن زوال الأقل جاء بطريق محرم و يمكن يجماله كما يدي تقدر شواشيد مقدرين رابطه فقهاء در حكم سكران اختلاف کردن در حكمش و تصرفاتش تا اعتبار داره سبب اختلافشون هم اين هست كإنجا أقل ازراهة چي ازبين رفته ازراهة حرام و به شکل اجمالی اختلافشون با این دسته بندی که در زیر آورده، این به شکل قشنگی حل میشه. یک فیما یا علف فیما یا خصو تصرفات تصرفاته, تصرفاته ابتدا تصرفات قویه اون کسی رو که از راه حرام مسجد شده رو برسي میکنه که در مورد اختلاف به چه شکل اختلاف فقهاء او اول او در تصرفات قولی بعدن در تصرفات فعلی طول فرق میکنه حالا دقت کنید میگه یک ذهب بعض الفقهاء الا ان عباره السکران ساقطه فلا يعتد بشيء من اقواله ولا يترتب عليها اي اثر شرعيا فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه شراؤه ولا اي عقد من عقود دقت داشته باشید میگه فقه ها گفتند یا نظریه دادند یا بر این مذهب رفتند که عبارت شخص سکران ساقط هست بارد. یعنی اقوالش اعتبار ندارند و بر اون هیچ اثر شرعی مترتب نمیشه طلاق شواقع نمیشه معاملهش شرائش، يعني خريد وفروشش، وهيش عقد ديگري، وهاذا، خب، إنه زرير كي داده؟ كل فقهنا، قفت، ذهب بعض الفقهاء، إلى أن عبارة السكران ساقطة، بعضي الفقهاء قفتاند، كاغا، عبارة السكران ساقطة، اعتبار؟ يعني عباراتي كي تلفز میکنه، عباراتي كي ميگه عرضش نادارن، ونو كي هستند؟ وهاذا مذهب الظاهرية، ومن تبعهم این مذهب ظاهر هست آقا ظاهریه میگویند که عبارات شخص سکران ولو این که از راه حرام مست شده باشه اعتبار نداره ظاهریه نظریه این هست و من تبعهم هم و اونایی که میگه گیه تیروی میکنه و هی احدا روایات امام احمد می که از روایت هایی که از امام احمد هم نقل شده همین هست و هو اختیار تحاوی من الحنفیه امام تحاوی از امه احناف از علماء احناف همین عقیدهی که می خونید بله همین نظریه رو ترجیح داده گفته که آقا اگر شخص از راه حرام هم باشه عباراتش ساقط هستنده اتبار دو نظریه دوم تعتبر أقواله ويعتد بها وتترتب عليها آثاره الشرعية فيقع تلاقه وصائر تصرفاته القولية وهذا مذهب الحنفية والشافئية والمالكية على التفصيل في بعض التصرفات إلا أن الجميع متفقون على وقوع تلاقه أغاد نزلي دفوم در تصرفات قولي براي شخصي كأزروي حرام ما شده إيناس كأقوالش اعتبار دارند و. آثار شرعی بر اقوالش مترتب میشه اگر اومد تلاق داد خلاص تلاق واقع میشه بله بله. میگن چون این خودش عمدی رفته آقا خودشو چکار کرده مست کرده میگه پس نه در نتیجه تلاقش واقع میشه سایر تصرفات قولیش اعتبار داره و همین از مذهب هنفی ها شافعیه مالکیه بر تفصیلی که در کتب اصلا در اون کتاب بزرگتر کتاب کامل دکتر زیدان اونجا مفصل بحث میکنه کاری نداریم خود در هر صورت ولی میگه که پس در تصرفات قولی گرچیک تفصیلاتی دارن اما همهشون متفقه در این هستند که طلاق آقای شخصی که از روی حرام از راه حرام مست شده طلاقش میشه، واقع میشه گفتیم این پس،, پس سکر از طریق محضور و تصرفاتش رو به دو دسته تقسیم کرد تصرفات قولی در مورد تصرفات قولی دولی زریعه وجود داره اولایی که گفتن اقوالش اعتبار نداره ظاهریه سر دستشون بود بعضی از احناف اونایی که میگن آقا اقوالش اعتبار داره و آثار شری برش مترتب میشه که بله خودش ترجیح میده فیما یخص افعاله اما در رابطه با افعالش اما تصرفات شخص تصرفاتی در افعالش یا فعلهاش ببینیم نظریه فقها در مورد افعال شخصی که از راه حرام مرتکب شده هست لا اختلاف فی ان افعاله المتعلقه بحقوق لباد و اخذوا علیه مؤاخذه مالیه هیچ اختلافی وجود ندارد در مورد افعالش اون افعالی که تعلق به حقوق بندگان داره هیچ اختلافی وجود نداره که معاخزه مالی میشه. آقا یکی اومد شراب خورد. تمام فقه ها و اومد ماشینی رو مثلا آتیش زد. بینوانه مثلا. حوششی گه میره نه؟ میگه همه فقه ها متفقند که معاخزه مالی میشه. زمانت زامن هست. پول ازش گرفته میشه. پس باید توبرانش کنه غاله. متوجه شدید؟ میگه اختلافی در این نیست که افعالی که تعلق به حقوق بندگان داره بر اونا معاخذه میشه معاخذه مالی البته و اذا اطلف نفسا اوبالا ظنینا ما اطلف زمانی کمه نفسی رو تلف کرد یا مالی رو تلف کرد زامن حسان چرا که تلفش کرده است اما المعاخذت البدنیه فالجمهورو على انهو لا یعاخذو به ها معاخذتا اما معاخذه بدنیه در رابطه با معاخذه چی؟ بدنی که آیا مثلا قصاص میشه یا نمیدونم فلان میشه در رابطه با معاخزه بدنی جمهور میگن که بله معاخزه بدنی هم میشه پس معاخزه مالی که ابتفاقی بود در مورد معاخزه بدنی اختلاف وجود داره جمهور میگن که آقا معاخزه بدنی میشود فیقتل و اذا قتل اگر کشت کشته میشه آقا یکی رو کشته در حالان که شراب کوردن محس بوده آیا علم قصاص میشه یا نه جمهور چی میگن قصاص میشه و یقامو علی الحد و اراغ اگر زنا کرد محخصه بدلی میشه یا نه جمهور گفتن بله حد برش اجترا میشه آه؟ و قال اهل الظاهر و من تبعهم لا یعاقبو علی افعالی قابت بدلین ولا يقام عليه إلا حد الخمر فقط اما اهل ظاهر گفتند آقا بر افعالش عقوبت بدنی داده نمیشه یعنی اگر اومد زنا کرد رجم نداره دیگه چون یک مؤاخذه مالی نیست رجم یک مؤاخذه بدنی دیگه بله میگن ولا يقام عليه إلا حد الخمر فقط فقط حد شرابو بهش میزنن چرا میگن چون اون موقع اینو خورده هنوز بیهوش نبود سکر نداشته اینو ظاهریه میگن اینو که میگه؟ ظاهریها خب ببینید ظاهریها گروه از فقه های اهل سنت هم مثل احناف مثل شافعیه مثل مالکیه اگر اقوالشون راجع بود پذیرفته میشه اقوالشون راجع نبود پذیرفته نمیشه ؟ ظاهریه داوود ظاهیه، امام ابن حسن ظاهریه، ها؟ کتابی داره بنام محلله، اتفاقاً عرزوش خونده رو هم داره. ولی این بین آقا، این اصول اهل سنتک قول مطابق با دلیل بود پذیرفته میشه. مطابق با دلیل نبود پذیرفته؟ تنها کسی که قولش به شکل قطعی پذیرفته میشه خود شخص رسول الله هست. بعد از اون، هیچ کسی معصوم نیست. خب بریم جلوتر، پس این؟ نه فقط همینو تموم میکنیم بیان الراجح من الاقوال، اما قول الراجح کدوم هست قول الراجح کدوم هاست، فالراجح کما يبدو لنا، هو قول القائلون بعدم الاعتدال، اعتداد به جميع اقوال سکران به طریق محذور مع مؤاخذه ان جرائمه مؤاخذه کامله میگه قول راجح ببینیم دکتر زیدان رحمت الله علیه خودن نظریه رو پذیرفته میگه راجح آن طور که واضح است برای ما اون است قول اونهایی که گفتند به عدم الاعتداد که تصرفاتش اعتبار ندارد به عدم الاعتداد به جمیع اقوال سکران اون سخن اونهایی برای ما راجع هست که تمام اقوال سکران اون سکرانی که از راه حرام هست اعتبار ندارد دقت داشته باشید دواره تکرار میکنن میگه کفراج دولنا راجه ها انطور که برای ما واضح شد یا انچه برای ما ظاهر است اون قول قائلینی هست قول اونهایی هست که میگویند اعتبار ندارد تمام اقوال سکران که به طریق محضور اومده مست شده به طریق حرام پس اقوالش میگه اعتبار نداره حالا ببینیم بله اما معاخذتی هم جرائمی ولی اگر جرائمی رو کرده چی میشه معاخذه کرده میشه معاخذه کامل پس این چیزی بود که ایشون ترجیح داده بود شما خودتون بخورید انشالله تا زمانی که دانشمند شدید اهل اجتحاد شدید یا به درجه ای رسیدید که بینه تر اقوال تشخیص دادید که کلو... کدوم کدام از است اون موقع اون نظریه‌ای رو که طبقه ادلتر بود بله دکتر زیدان رحمت الله علیه لو ترجیح داده جزاكم الله خیلی.